سوال اول گفتیم که چی هست و چی نیست اقتصاد مقاومتی اولا یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ماست این اون جنبه مثبت اما منحصر به کشور ما هم نیست یعنی بسیاری از کشورها امروز با توجه به این تکانه های اجتماعی و زیرورو شدن های اقتصادی که در این 20 سی سال گذشته اتفاق افتاده است به فکر یک چنین کاری افتادن متناسب با, با شرایط خودشون پس این مطلب اول این که این حرکتی که ما در انجام میدیم دقدقه دیگر کشورها هم هست این مخصوص ما نیست